جلسه پنجاه قبائد فقسی و سوالحکومم ده دوه هزار بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بسم الله علیه سیدنا و نبینا ابل محمد و علیه اهل بیت طاهرین المعصومین سیم و الله فی الارضین روحی و عربه العالمین له الفدا استانه از خدای متعال و تعقل توسل به پیامبر اکرم علیه السلام بحثمون رو آغاز می‌کنیم یو آر نااو ان دیگه که ما داریم برعنوان یکی از قواعد دیگه ما میشه مصلحت‌های متفاوتی رو با هم مقایسه بکنیم مصلحت یکی از موارد مسلحت معتبر و مساله غیر معتبر یک تحبیری در مفهوم مسالح دستبندی مساله ما داریم به عنوان که مورد اعتبار قرار نگرفتن فضای رایجی که در مورد این مفهوم هست اینه که یک مساله معتبر داریم یک نصابه مساله ملغات داریم و یک مساله غیر معتبر بباشید رها شده مرسله خب این فضای مساله معتبر که طبیعتا روشنه مساله معتبر مساله است که شرعن شاره قبول کرده ترجیح مساله در واقع مساله معتبر به این صورت وارد بحث میشه که المساله معتبرم الان مساله المرسل و الملغات حالا ابتدا جایگاه مساله ملغات مشخصه یه شعر اون رو رد کرده باشه خب این امر روشنیه که شعر مساله که مورد اعتبار نیست و شعر اونها رو رد کرده اونها چه جایگاهی دارن خب روشنیم از مفهوم مساله معتبر که معلومه مفهوم شناسی ما اینجا ها که در واقع ما مسلحت معتبری باید داشته باشیم حالا اون بس روش کشفش و نقد هایی که به برخی از روش های کشف به ویژه روش های زنباوران هست اون سر جای خودش مساله معتبر مساله است که شاره مقدس اونها رو پذیرفته باشه بحث از روش کشف اونا متفاوته مفهوم مساله ملغات چیه؟ ملغات یعنی القاشده مسالهی که شاره در واقع مسالهیست که شاره مقدس اونها رو نپذیرفته و رد کرده خب شما میگید من دوست دارم برم روا بخورم نوزو این مسلحتی ممکنه توش تصویر بشه مسلحت شراب نه خود اشاره متع... دمود شراب چی میفرماند درش منافعی هست اما در واقع اعتبار اون رد شده البته در اینجا مستقیم مفهوم مستعد به کار ولی گفته نفع امومان یا نفعش چیه زرارش چیه کدامش من قبول دارم کداش قبول دارم نکته اساسی مساله مرسله است اونایی که اعتبارش لغو شده باشه خب مشخصه مساله مرسله مسالی است که شاید که برف در تلقیه قائلان به این مفهوم شعره مقدس اینو عمدن میگم در تلقی قائلان به این مفهوم شعره مقدس اون نسبت به پذیرش یا نفی اونها هیچ سخنی ندارد اینو چرا گفتم در تلقی اونها؟ چونکه ما اگر بیم نگاه جامعیت دین رو در نظر بگیریم در مقام جل جامعیت دین در مقام جل مقتضی نفع و اثبات همه گزاره های حکمی مورد نظر شارع است طبیعتاً نفع و اثبات اونها منتکی بر مساله چه در واقع بر نفری و اثبات مساله مربوط به اونهاست خب شما اگر در واقع تا این مفهوم این خلاص این مفهوم نیاز به توضیح داره اون چرا یه نقطش این بود, بود اما آیا شار همه رو برای ما مستند میکنه شعر متعال لزوم خلاصه ضرور بگیم ضرورتی ضرورت نداره که شعر متعال مصلحت، علت یا حکمت همه احکام مورد نظر خود رو به ما اعلام کند خب حکم چی؟ نه دیگه. جعل احکام به قصد اجرای اونها توسط خلاص بندگان هست در نتیجه جعل حکم جعل احکام به شرط اون که مانعی در برابر اعلام اونها نباشد خلاصه به در, در زمان مورد نیاز خلاصه به بندگان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و عمدتاً از طریق خلاصه انبیاء الهی حالا عمدتاً هم نگیم حالا مسئله ظریف باشه از طریق انبیاء الهی اعلام می شود حالا انبیاء دومل که خلاصه رسول و اینها نیستیم رسول و انبیاء الهی خلاصه اعلام شدند خاطرم هست مثلا حضرت هارون به نبی معرفی شده در یکی از آیات شریفه خب نبی است، اما رسول یادم نیست اونان رسول معرفی شده حضرت موسی علا نبی و علیه السلام اونان رسول هست خب طبیعتا نبی هم هست که خبرم میده اما حضرت آرون فقط نبیه رسول نیست خب به هر حال اگر مورد نیاز باشه همه احکام توسط خدای متعال خلاصه باید اعلام بشه چرا؟ که جعل احکام به قصد اجراست و, و شاره متعال جعل حکمی بدون قصد اعلام به بندگان ندارد خب این حکمت الهیه اما جامعیت دین سر جای خودش بود حالا می رسیم به بحث اعلامه خلاصه اینجا شا... اعلام حکم سر جای خودش اما اعلام حکمت چی شار متال م... ضرورت نداره که همه رو به ما اعلام کنه. برای هدایت انسان ها صرف بیان احکام معمولا کفایت میکنه. هرچند در موارد متعدد شاره متعال خلاسه خداوند متعال به بیان حکمت یا حتی علل تشریح خلاصه پرداخته به صورت البته اجمالی یا تفصیلی حال بحث مساله چی بود؟ ما بحث مصالح مرسله کاتم. احکام باید گفته بشه. اما از این جهت اگر بیان نشده در نت... ما می توان اینجا به این معنا خلاصه مفهوم ارسال رو قبول بکنیم. در نتیجه به خلاصه ضرورت بیان احکام به مورد نیاز انسان لزومی خلاصه نداره که مسائلش هم گفته بشه ضرورت مجبور ضرورت جعل حکم در واقع این جعل و بیان احکام مورد نیاز انسان مقتضی بیان خلاصه همه مسائل نیست مسائل نیست لذا می بلسه میتوان ارسال ارسال و عدم بیان همه مصالح رو پذیرفت البته تو فضای اهل سنت حالا از این مقوله ارسال تلقی خاص خودشون رو دارند و خلاصه گاهی اوقات به معنای ادب جل ممکنه تلقی بشه به ویژه دایره منسوسات اونها کمه در بحث دیگه خب ما مقاله این رو مطرح میکنیم و با خدمت دوستان مطرح کردیم پس اینجا ارسال یه معقول است اما ما اصل کار تزاهوم رو در میان چی میبینیم؟ تو عمل میبینیم ما در عمل است که معمولاً میازمنده چی هستیم؟ در واقع تزاهومیم تزاهوم, تزاهوم به صورت اساسی میان تو حکم مورد نظر قرار میگیره که با باید در واقع قرارم بگیره اما ارتباط یا توجه به تضاحم مصالح معمولا خلاصه بر عهده خود از این رو تضاحم مصالح معتبر با مصالح ملغات یا مرسلم باید از این منظر لحاظ بشه و ما این رو ای چیز مستقل نمیخوایم حساب کنیم خب این تاثیرات خاصیت خودش رو در بحث داره خب اگر اینطوری ما معقولا نگاه بکنید پس تواسونون باشه دو چهار آسیب های می های اشهای خلاصه چیزی نشیم که ما بیافتیم به دامن خلاصه مست بدون حکم به تعبیر دیگه نباید تضاون مساله رو بدون لحاظ احکام مربوطه خلاص احکام برآمد از اونها لحاظ کنیم این سنجای خودش ما تو معمولا در مقام عمل ما میگیم موقعی دو تا گوی با لسان حکم در عرف عادی ممکنه صحبت نکنیم بگیم که آقا این دو تا خوف، این دو چهار این دو تا مصلحت تنافی دارن این کار یه مصلحتش اینه یه مصلحتش هم اونه ببینیم کدوم مقدمه خب در اینجا این رو ما باید تحلیل کنیم خب الان مفهوم روشن شد و در واقع ما یه مقداری خاصگاه در واقع وجه وجه ترجیح رو داره نزدیک میشیم که در واقع وجه ترجیح مزبور نیاز به چی داره توضیحاتی داره. خلاصه تبیین ترجیح مزبور نیاز به توضیح داره به چه صورت ؟ یکی اینکه این جامعیت دین جامعیت در جل و عدم خلاصه امکان به عدم بیان خلاصه ام در واقع بگیم ارسال وچه ارسال مساله این رو باید لحاظ بکنیم خب تا به ما برسیم به این خلاصه وچه ترجیح ما از طرف ترجیح این مساله محتبر جایگاهش چیه؟ برای فهم ترجیح میان مساله معتبر با مساله غیر معتبر و یا ملغات خلاصه نیاز منده نکته خاصی نیست در واقع ترجیح میان این دوتا ماهیتش اینه مساله معتبر امر روشنیه چرا که خلاصه ما نمی توانیم مکلفان نمی توانند به اقتضای بندگی مکلفان به اقتضای عبودیت ضرورت عبودیت و بندگی نمی توانند مسالهی را که خود اونها می پذیرند و خلاصه مورد اعتبار شاره نیست اینها نمی توانند معتبر خلاصه بدانند که شارع اونها رو رد و الگا کرده به تعبیر دیگه پذیرش مساله غیر معتبر و ملغات به معنای خروج از طور عبودیت و بندگی است خب این خیلی روشنه در نتیجه خلاصه اصلا ترجیح مساله اصلا مساله غیر معتبر و ملغات اصلا امری روشنه امری روشن در تلقی است. این که روشنه اما ترجیح، مساله معتبر بر مساله غیر منصوص و مسکوتون ان این نیاز به توضیح داره یا به تعبیر دیگه مساله مرسله نیازمند خلاصه توضیح و تفصیله چرا؟ یه جه ما میاییم خلاصی مسکوت شرعی رو میگیم و ما فهم رو محدود میدانیم چرا در واقع اینجا نیاز به تحلیل منابع در واقع شن فهم این مقوله نیازمند در واقع تحلیل کیفیت خلاصه مباعث اصولیه و اعتبار حججه نیازمند تحلیل خلاصه حجیت عقل و بگیم عرف یا دیگر منابع مورد ابداع خلاصه هست تحلیل حجیت تحلیل و تحلیده خودجیت عقل ارفتی و, دی و دیگر خلاص منابع یا به تعبیر آجای علی توس بکیم منبرداره ها یه خلاص محتمل یا مورد ادعاست عقل یه وحث دیگه است اگر ما راه معرفت شرعی رو محدود به منصوصات بدانیم تمام راههای دیگر خلاصه مسدود خواهد بود و نمیتوان از طریق اونها به ترجیح مسالهی بر مساله دیگر پرداخت از این رو خلاصه فقط می میبایست به ترجیح مصالح از طریق منصوصات پرداخت اما در حالی که اگر طرق دیگر به ویژه عقل خلاصه به صورت محدود یا وسیع خلاصه مورد پذیرش قرار بگیرند میتوان به در واقع مبازنه امکان امکان موازنه مساله معتبر شرعی با مساله مکشوف عقلی که مورد ارسال شاره قرار گرفتند خلاصه پرداخت در واقع اگر راه بسته باشه خب یه معقول است اگر امکان دستیابی به اون وجود داشته باشه یه بحث دیگه است حداقل جای طرح هست پس بنابر این بحث محدود به نیست ما در واقع ارسال خلاصه ارسال برخی از مسائل به معنای به مسائل در منصوصات شرعی تاثیر مهمی در بحث ما داره چرا چون که به هر حال ترجیح مسائل معتبر و ترجیح مساله معتبر شرعی که در منصوصات آمده مساله معتبر منصوص بر مسائل غیر منصوص و مسکوتون ان یه موقع ام، ام، خلاصه راه بسته است یه موقع راه باز میشه به چه صورت باز میشه فهم خلاصه مجبور مبتنی به امکان راه دیگه است اگر راه معرفت شرعی محدود مرنسود ساد باشه دیگه راه بسته است خلاصه در این صورت خلاصه اگر مساله مرسله نمیتوانند جایگاهی یا راهی برای توجیه و حجیت خود پیدا کنند اما اگر در مقابل اگر طرق دیگه باشه امکان موازنه خلاصه به وجود می آم خلاصه موازنه مزبور امکان پیدا میکنه چرا چرا که می توانیم بحث کنیم اگر به تعبیر دیگه اینجوری بگیم به تعبیر دیگه مساله مرسله از منظر شرعی و خلاصه تبیین در منصوصات ارسال دارند اما اگر بتوان این موارد رو به صورت قابل قبول در زوابت شرعی از طریق عقل یا غیر عقل کشف و خلاصه و دارای کجیت شرعی معرفی کرد و شناخت به صورت قابل اگر این رو به صورت قابل قبول در اساس ضوابط استنبات شرعی ما بتوانیم بشناسیم خب وضعیت متفاوت خواهد بود این موارد خلاصه بر اساس زوائد شرعی از طریق عقل یا غیر عقل کش و دارای حجت شرعی شناخته شوند وضعیت متفاوت خواهد بود چرا چرا که امکان در واقع تاییدش وجود داره اما باز این نیازمند یه مرحله دیگه است به این شرط که خلاصه اثبات عقلی بتو... یا غیر عقلی به از طریق از طرق با واسطه های حل بشه مقولش راه باز بشه برای ما مثلا بیم از قاعده از طریق تمسک به قاعده خلاصه تلازم حکم عقل و شر یا احیانا خلاصه طرق دیگر حالا نف نمی کنیم طرق خلاصه مشروعیت آور دیگر خلاصه این اثبات فایده پیدا کنه اثبات عقلی یا غیر عقلی برای اعتبار مساله مرسله به توان خلاصه امکان داشته باشه خلاصه و به توان محقق بشه امکان و تحقق پیدا کنه در این صورت امکان موازنه وجود داره بر این اساس مرسله بودن یک مسلحت از منظر تایید و عدم تایید عدم در واقع بگیم تایید و عدم تایید در منصوصات خلاص بحث رو به اتمام نمی رسانه بلکه نیا بلکه خلاص باز بودن این فارق از بحث مصداقیا به نحو کلی کلی ما داریم میگیم از منظر خلاصه اصولی باز بودن دیگر طرق میتونه امکان موازنه و مقایسه رو محیا بکنه فارق از اینکه فارق از اینکه مصداق فارق از در واقع بحث مصداقی این راه باز میشه بحث مصداقی و خلاصه صغری یه چیزه ما بحث الان کبروی می بلکه از منظر اصولی و خلاصه کبروی این مقوله متفاوت میشه راه باز میشه حالا نتیجه ممکن است تابع مصداق باشه و اه خلاصه اه پذیرش اه خلاصه مصداقی هم جا داره یا عدم پذیرش یا عدم پذیرش مصداقی امکان طرح خواهد داشت لذا ما اینجا اگر می سراغ این قاعده ببینیم چگونه است پس این که معتبر بر مساله ملقات مقدم بشه یه نکته شرعیه در واقع اختزای عبودیت و ترجیح روشنیه خب حالا مساله معتبر بر مساله غیر معتبر این رو حالا ما باید جدا بررسی کنیم پس در مجموع باید طرق دیگر هم در نظر بگیریم و نمی توانیم بحث رو محدود بکنیم خب حالا اگر اون اعتبار اعتبار محدود شرعی باشه اینجا اعتبار خلاصه خاص از طریق مصداق در موارد و مصادیق خاص تبدیل به اعتبار میکنه پذیرش یک مصداق از مساله خلاصه مسادیق خاص بگیم مسادیق خاص از مساله مرسله میباید تحت خلاصه زوابط شرعی و استنباطی خلاصه قرار بگیره با رعایت ضوابط با شرعی و اجتهادی و استنباطی خلاصه انجام بگیره خلاصه ادعا صرف ادعا کفایت نمیکنه اما اما اگر یک مورد مورد خلاصه جای طرح داشت می میتواند در موازنه بین دو مصلحت به صورت کلی نقدی در واقع بگیم استثنایی بر قاعده مزبور تلقی شود چرا؟ نیازیات سوری البته ها. می تواند در موازنه بین دو مصلحت به صورت کلی استثنایی بر قاعده تلقی شود مگر آنکه مصلحت اصلا ساعتی که مگر اعتبار مصلحت به صورت عام مد نظر قرار گیره در این صورت خب باید میان هر دو مصلحت خلاصه میارهای مورد نظر مورد بررسی شاخصاش مورد بحث و بررسی قرار بگیره انشاءالله که این بحث رو ما به توانین تکمیل کنیم الحمدلله رب العالم